به نام خدا صحبت تعلیم و تربیت توی عصر ما در واقع بس گفت صحبت بر سر یک بحران هست ما اگر بحران های چه جدید رو بخوایم زیست بکنیم بحران تعلیم و تربیت رو هم باستی واقعا در رحصه بحران قرار بیدیم مثلا الان اگر دوران بحران مالی در جهان هست این یک دفعه اتفاق افتاده یه دوره پیکی باز افور می‌کنه و به طریقی به حال تعدیل می شه یا بحران های مثل جنگ هایی که اتفاق می در بخیه از مناطق در جهان بحران‌های های مختعی هستن یا مثلا بیماری که بحرانی ایجاد میکنه مثلا مثل ایگ هم یا آمفونوم مرقی معمنلا یه پیکدارره کوتاهی هستش. بنابراین نمیشه گفت این بحران ها رو بگیم بحران های دورانی هست یا های مختص ثر جدید و جهانی مدرن است. اگر بخوایم واقعا یکی دو سه تا بحران رو مخته، جهان جدید عصر جدید و تمدن مدرن و مدرنیزم قرار بدیم اسم ببریم بدون شک یکی از این دو تا حتما یکیش بحران تعلیم و تربیت است بحرانی مستمر و فضاینده و بلاوقه که تصاعدی داره رشد میکنه و بحرانی جهانی منطقه جهانی جهانیست و بلانگات است، تلی داده و خب این خیلی جادو که <تصفح> چرا چنینه در اصری که یکی از امتیازات و افتخاراتش بر حسب ظاهر اینه که اصر کتابه اصر دانش آموزش اجباری اصل آموزش عمومی هست اثر برکندن بی سووادی هست و جوابی دارن به سمتی میرن که دیگه بی سواد دیرو دارن به صفر می اصلی هست که در هر روستایی کالج یا دانشگاهی هست در سراسر دنیا ما در که این مواجه با بحران تعلیم و تربیت هستیم و این خیلی عجیبه ظاهرا با باید بررکس باشه دیگه خب این خودش یه دیالکتیکه یه پارادکسه یه تناقضه یه تناقضیه در ذات این تمدن این مدنیت و این مدرنیزم هست در اصر شکوفایی مدرسه تعلیم و تربیت امکانات تکنولوژیکی در سرسال جهان پدید اومده برای آموزش هم علمی هم تربیتی مدارس مهد کودت مراکز بهداشت روانی مور تربیتی در تمام دبستان ها، مهد کودک ها همه اینا مراکز تعلیمی و تربیتی هستند. دیگه که در تاریخ بشر سابقه نداشته مردود دست جدیده یعنی در واقع بس گفت در دورانی که بشریت اگر قرار با واسطه این پیشرفتهای ظاهریش به یک چیزش بنازه نسبت به گذشته تاریخش بایستی به تعلیم و تربیت بنازه به تعلیم و تربیت خودش بنازه در چنین اصری بشریت امروز مواجه است با بحرانی نام بحرانی تعلیم و تربیت بحرانی بنامه بحرانی تعلیم و تربیت. تربیت یعنی چی؟ یعنی بحران تعلیم ناپذیری و تربیت ناپذیری یعنی این دیگه یعنی موزله بی تربیتی بشر توحش و جنون به عنوان یک بحران جهانی در سراسر کشور ها یا جهان پیشرفته، توسعه یافته نمی همه، همه هستن دن بی تربیتی. حتی علم حتی علم نمیدوره واقعا ما اگر اطلاعات انفورماتیک رو ما اگر تعلیم ندونیم که واقعا تعلیم نیست یعنی اطلاعات آرشیوی، حافظه اگر جدور ذر رو ما اگر علم ندونیم که واقعا علم نیست چون جدور ذر رو به میمون نمیشه آموخت. مخت قیده میام بزن. به میمون کامپیوتر میام دارن یاد میدن الان میمون های در دنیا وجود دارن درصد وسیع دارن خیلی زیادن میشن پشت کامپیوتر کار میکنن از انسان ها بسیار درقیتر کار میکنن خب نواریم این تعلیم نیست تعلیم انسانی این نیست هرچند حتی از لحاظ تعلیم آشیوی و ذهنی و حافظهی و اطلاعاتی و انفرماتیک هم نگاه کنه این امروز از این رادم دستار بحران به نام بران حافظه موزلی به اسم نسیان نسیان خوب این گنوانی ما قدمه در واقع این نتیجه رو ازش میشه گرفت که واقعا پیشرفته فنی رشد تکنولوژیکی پیشرفت حیرت آور ارتباطات جهانی پیشرفت روش های تعلیم و تربیت پیشرفت کانون تربیت پیشرفت تعلیم و تربیت اجباری در اصلاحی جهان اینا مختص اصلاح ماست که اتفاق افتاده عمرش همش دیگه سال نیست در چنین عصری، بشر مواجه با بحرانی تردیم و یعنی به زبان ساده در ما در هستیم که با نسل‌هایی از بچه‌ها و جوان ها و ادام های طرف هستیم که بایستوینا گفت نسل وحشی نسل دیوانه نسل های خطرناک نسل های نسل‌های نسل های جانی نسل های روانی از طرف دیگه شما از اخبار اساسای جان میشنویم دیگه اون صنای تراجیکشو تو اخبار میگن دبستان ها تو دبستانی‌ها دبیرستانی‌ها مسلسل بچ بچه بچه‌ها اصلاً همدیگرو قتلان میکنن معلم‌ها رو میکشن پدر مادراشون میکشن این هم بخشی از بحران تعلیم و تربیت دیگه یعنی بر علیه این نظام در واقع میشه گفت بشر स्वतः قیام کرده یعنی بچا این نسل در واقع میشه گفت با ذات این تعلیم تربیت بچا بمباست رسیدن که ساز نابودی میکنن برای نجات خود مسلسل به دست میگیرن و میرم محیط مدرسه با دانشگاه مسااصلی بند و معلمشون رو به قتل میرسنن. حالا این حالا دکتا جاس اینقدر خوات نشد این مسئله ها ولی به شکل دیگه ای ها آنچه در اونجا تو افتاده ما هم اصلا یک ده سال دی بجا میسی ولی به نوعی دیگه حالا قرار به مسااصلی نیستن محیط مدرسه خوب شما نیاز مشکلات انسانی امروز خوب خیلی زیاده است، هستان مثلا اسم ببریم که مشکلات بشری مدرشیه مثلا ست تا ببریم هر که دیگه په داره همین مشکلات رو همین ندارن در حد حد و بحرانش ولی بحران تعلیم و تربیت رو هیچ خونه نیست نداشته باشه هیچ خونه ای نیست در سراسر جهان که مواجهه بحران تلیم و تربیت در مورد بچه‌هاش نباشه هیچ نیست و این یکی از بزرگترین های فکری فرهنگی بشه در امروزه کمو باش بمب رسیدن حکومت‌ها اساتید فلاسفه معلمی و در رأسش پدر و مادرها یکی از های مشترک همه پدر و مادرها امروزه در سراسر جهان این بچه هاشون هستند امروزه بچه در یه خونه آیه عذابه برای همینه اصلا نفرتی از بچه دار شدن و رشد جهانی براندازی رحم و عقیم سازی خود عقیم سازی مردها به زنها به نوعی اینا همه اینه که بچه دیگر رحمت نیست بلکه عذابه این به معنی اینه که پدر مادرها از پس تعلیم تربیت بچه هاشون برای ما این تعلیم تربیت از جنبه جهانی کلی از جنبه فلسفی از جنبه های کلان و تاریخی جامعه شناختی زیاد صحبت کردیم مطلب نوشتیم ولی در این صحبت تخصصا میخوایم تعلیم تربیت رو در چارچوب خانه و خانواده میخوام مورد بس قرار بدیم این مقدمه رو هم کردیم که اهمیت صحبت روشن باشه که این مسئله مساله مساله هماست درد همه هست عذابی که همه بهش مقتلا هستند و این اعصاب میده که ازن میشه بشره براندازه و دلیل اینکه اصلا, اصلا بیزارن از اصلا خود همین یکی از یکی از علل فرا فرال از ازدواج هست اصلا فرال بچه بچه‌دار شدن که خود همین علل پیدایش طلاق چون بچه یکی از ستونای استقامه خانواده است باید ببینین این بلندترین تربیت چیه فقط مختص یه گروه سنی خاصی باشه و بعد اون دوران سنی رفت بحرانم ازشون بعدشون بپره نه اصلا اینطور نیست این بحران چنون از همه سوریشه دوانده به دماده روانی میکنه بچه ها که دیوانه میشن به سن بودون به جامعه که ها به صورت بیماری روانی وارد جامعه میشن خب این نسل در جامعه چه خواهد کرد ما قبل روانی کن جامعه خب. یک نسل دیوانه بیتربیت و وحشی نسلی که اصلا تربیت نمیدونه چیه هرگز تربیت نی... نیافته چه نسلی بونیاد تربی... در این نسلی بنیاد خانواده رو درخ پدر مادرشی میزنه باید براین تربیت فقط براین تربیت نیست، به استقام خانواده مربوط میشه منجر به طلاق آمار طلاق بالا میبره آمار بالا رفتن سن ازدواج رو بالا میبره فرار از ازدواج رو بالا میبره از این طرف، از طرف دیگر، اضلاد سیاسی، آه، رحبری، اجتماعی ایشتم ایت. همه میکنه. اولی اقتصادی ببین یک انسانی بی تربیت و تعلیم نیافته، فقط با یک چیز میتونه خودشو تعمل کنه و دیگه پول هر چه بیشتر. رفاه، رفاه اندال، رفاه، رفاهی پس خب خود این نسل بی تربیت و, تربیت و تعلیم نیافته خود مولد بحران خسادی است در سطح خانواده و در سطح کل جامعه پس میبینیم که این یک امول بوهران بحران ترین تربیه یعنی اگر بخوایم یکی از یعنی حقیقتن اگر ما مثلا بخوایم سه مسئله اساسی بحران اساسی در تمدن جدید استم که امول مسائل این تمدنه که اگر حل نشه این تمدن رو به انقراض و نابودی میکشونه، یکی از این دو تا بحران تربیت متعارفیاته نظر شخصی من اینه که یکی از این دو این مهم این انسان دریجه یک و بزرگترین مزلی بشری است و تمام های دیگه تداشی این بحران قرار دارند و مورود بحران تعلیم و تربیت هستند خب از این بحث کلی که بگذاریم وارد خونه بشیم یه مقدار اصلا با خود تعلیم و تربیت رو برازیم که اصلا تعلیم و تربیت یعنی چی؟ خب تعلیم و تربیت در درون خانه را, را صحبت بشه دیگه خب تعلیم رو ما دیگه درمازش نمیکنیم قبلا صحبت کردیم در جای دیگه بیشتر به جنبه تربیتیش برازیم گرسی این دو اصلا دیگه این ناپذیر هست اینا علت و معلول هم دیگه هستش خب آنچه که اسمش رو تربیت میذارن که به نظر میاد که این کار خونه است چون تعلیم معمولا بچه از تا 5 سالگی میره تو مهد کودک اون مدرسه به نظر میاد که جامعه درصده کلان ها مسئولیت تعلیم بچه‌ها رو دیگه میگیره خب بعض برای خانواده که میمونه برای پدر مادر تربیت میمونه و در جنبه تعلیمی هم به عنوان یک زور یک کمکی میتونه کاری بکنم میتونم نکنه ولی تربیت هم نیست مربوط به خانواده جامعه نمیتونه همچی کاری بکنه مطلبا جامعه نمیتونه کسی که تربیت کنه جامعه و بخصوص در تمدن مدرن هر انسان با تربیت پیغمبر هم در خونه پدید بیاد در سن به جامعه که برسه نوت درصدش تباه میشه جامعه مدرن ما یه جا تاروخ نداریم این یکی مسائل اساسیه جوامه مدرن قلم روی تبایی بچه های ما هستند آه. یعنی پس نظر نمیشه از جوامع ای از چه جدید از نهادهای اجتماعی یه از شما توقع این داشته باشیم که اون هم بخشی از تربیت بچه های ما بوده و بگیرن که هیچ بلکه ما جامعه رو مبستیم روزه یک آنتی آنتیتز تربیت بستی بزنیم. بنابراین پس بایستی بر روی تربیت در جامعه پدر مادر دو ست چند ها بیشت از زمانی نیست گذاری رو بچه هاشون چنان شخصیت های مستحکمی بایستی از این بچه ها بسازن که در این دیوان خانه جامعه وارد میشن حالا رشد بکنن دو سرشون بخوره نابود نشنن در نابود نشنن لازم انسانی لازه اخلاقی تربیت کلا طبع نشن بحث ما رو قفی کنیم نمیخوا بحث فلسفی بکنیم نمیشه خب تربیت به زمان ساده ما میدونیم دیگه از زمان پ مادر بزرگات بکنیم بچه با تربیت به چه بچه ای؟ گفته میشه اومن. نه تو فرنگ ما در سرسل سر جهان در امریکا آفریقا جوابه مسلمان غیر مسلمان ها تمام یه بچه با تربیت بچه ای حرف یک این تعریف همه قبول بولدار هر کس این که غیر از این میده برای تربیت عملا منظورش از تربیت همینه دروغ میگم. بچه با تربیت یعنی بچه که گوش به حرف آدم بزرگان میده در اول گوش به حرف والدن خودش میده ما از تربیت داریم در دوران کودکی تا بلوغ عقلی در این دوران مد نظر ما از بچه حرف شنو یعنی بچه تربیت پذیر تربیت از لغت هم از رب و ربوبیت پس تربیت یعنی ربوبیت تربیت کردن از لغت اللازه کلمه تربیت یا بقول امروز یا لازه بیانه هرمونیتیکم تربیت کردن یعنی رب پذیر کردن رب پذیر کردن مربی پذیر کردن ولیپذیر پذیر کردن پس بچه با تربیت یا تربیت پذیر یعنی بچه‌ای که آغ از خودش رو می‌پذیره. ولایت بزرگترها رو میپذیره ولایت بزرگ پدر مادرش رو میپذیره و تربیت کردن این یعنی همین دیگه خب اگر ما امروزه مواجه با بحران تربیت هستیم مناش اینه که، ما در دورانی قرار دادیم که بچه ها از پدر مادر هیچ حرف شنوی ندارن با همین سازه کل بران ترگید. یعنی این پس واقعی بفهمیم که این چیه چرا بچه های این دوره زمانه با قول مروح بسید پدر مادر ها شرقا خود نمی کنن. و اتفاقا برعکسه ما وارد عرصه داریم میشیم که اسمشو بس بذاریم عصر بچه سالاری در خانوازه علاقه تاریخی علاقه جامعه خانواده یک دوران رو تقسیم میکردند به دوران مادر سالاری و زن سالاری. کار نداریم من روی تقسیمانگیار میگن. دوره بعدی و عصر دوم رو گفتن عصر مرسالاریه عصر پست نیست یا پسان مدرن رو که در واقع هستیم رو در واقع با اسمشو گذاشت عصر بچه ساداری این اصلا نویده خوشی نیست دست بچه نگاه کنید الان با اینکه این باران شروع کارشه ما نشانهای بچه ساداری رو ندر در در کل جوامه بشهی داره میبینیم حتی در نظام حکومتی و سیست رو ما شاهده و مردانی هستیم که یه مش قول بچه‌ن دارن برو جواب می حکومت یه مش قول بچه‌ن یعنی بچه‌های هستن که فقط هیکارشون رو شده مثلا 40 سال شده پنجاه سال شده ها ریستون بری نماینده مجلس شهردار، نمیدونم کنگره‌من سناتور فلان ها ها قول بچه‌ن اینا جهانی از روز روانشناسی واقعا خیلی در روانشناسی رو کار کردن این آقای جورج گوش واقعا یه اکثر قریب اتفاقه دولت مردان در جهان جور اگر این قضیه در امریکا خیلی تو زغم میزنه خب برای این ها از همه چیز در همه امور جلوترن در این امور هم دیگه در بچه سال هایی برای میگن این یه بچه است واقعا یا بچه پدرشه. پدرش پدرش آوالی نظر بسیم بور چون اون خیلی دوستاش بسیم بور میشه واقع نمیداره. من خیلی حتی بچی دوست از ایتون بود بودشه پدرشم یا بود که بود و ما دیدیم که هست سال کره زمین رو به نابودی کشوند و چه مفاصله ایجاد کرد چه بحران ایجاد کرد چه خونهایی هایی بید و اصلا بخش عظیمی از عظیم، این بحران مالی که بشریت به دنبالشه رو همین قول بچه بسم دیوت بوست کرد ببین بس مواجه با همچه خطری ما رستیم یکی از نشانه ه یعنی بچه که هرکس تربیه نشده تو خونه بابنه نشد این در همون حد یک بچه پنشیست ساله باقی مونده الان مثلا شست ساله شده بایتون بوریم هم میکرد یعنی بچه مونده این یعنی بحران تربیت بحران رب نافذیری جور مثال خوب یاده بای زبان ما ما دیدیم که گوش هیچ هیچی هستم نمیکرد پارلمان اینو بایکوت کرد مثل یک بچه پرویوه لجبا کو هر قدرتی میخواید بکنیم بکنیم کنگر این اون چیز تمام اون فازراش دارم تون استفاده دارم گفت من خودم بلدم من خودم میکنم بچه بازی بچه وازی یعنی یه مش بچه دنیا رو دارم دارم یا برقودنک یا اون رو کن این مثال سیاسی زدیم که بفهمید که بران تلیم تربیت و این فاجعه بچه سالاری مسئله خصوصی نه مسئله که فقط در دلیل خانواده باشه خانواده را به عنوان هسته مرکزی جامعه و مدنیت در درون میگن تا مغز حکومتها ها میگن دونه و بشری رو از روی زمین ور میداره این بچه ساده خب ببینید مثلا الان تو همه کشورهای دنیا در هر دولتی دقیقا 3-4 تا, تا وزاره از خونه وجود داره که مختص امور تعلیم و تربیه نه؟ با دریای امکانات، کادر، پرسنل، تخصص و بودجه های کلان که در واقع میشه گفت دروان در هکثر کشور ها همه کشور ها بخش عمره از بودجه ملی مختص به این امور تعلیم و تربیت. کجا در 120 سال پیش در طالی همچون چیزی اصلا بود که این همه امکانات و سیلویستهی برای تلیم و تربیت افراد یک جامعه وجود داشته بود خوابشون کسی نمیدید خب ببین پس در اصلی که امکانات تلیم و تربیت به طرز موجد آسایی پدید اومده و روز بود حال رشده که در تاریخ گذشته اصلا وجود نداشت همچون چیزی کسی خوابشون نمیدید همین درس خوندن دیگه مثلا در گذشته در هر فامیل خاندانی اگر یک باسواد بود باسواد بود که دو کلاس میتونست نامو برمیسن اینجا از افتخارات بود الان تو هر خونه یه دقیقی دانشگاهی هست بس در زمانی که امکانات تعلیم و تربیت تکنولوژی تعلیم و تربیت ارتباطات تعلیم و تربیت خدمات تخصصهای مربوط به تلیم و تربیت، وزارت خانه، بودجه، پول، قوانینهای تلیم و تربیت. برای اولین بار پدید می‌آید در تاریخ. و اصلا بازی از تدید و شکوفایی تلیم و تربیت بدانیم در تاریخ. یا چه این اصلی مواجه با بحران تعلیم و تربیت رستیم. از این مسئله یک نتیجه خیلی واقعی می‌شه داشت که حداقل نتیجه اینه که اینه که اینو بگیم ما. پس به این نتیجه می‌رسیم که تعلیم و تربیت انسانی مخصوصا ما صبح تخصصیمون امشب روی تربیتیم تربیت امری تربیت نیست که ربطی به فوتو فن و دانش فنی و تکنولوژی و امکانات و تخصصهای فنی آکادمیک مدرسه داشته باشیم تربیت چیزی نیست که در مدارس و دانشگاه ها بایدن بدن دانشگاه ها محل تولید مربی نیست که این مربی در جامعه تربیت کنن باز باید جاهای ما رو بله دیگه یعنی اتباقا برعکس یعنی به نظر در گذشته جامعه مربیان بیشتری داشته تو الان بله این همه دکترها و تخصیصها فوق و تخصیصهای و تربیتی بعد توی همین خانمها و آقاین متقصیص بری میبینیم بی تر این بچه ها رو خودشون دارن دیبونت تر این بچه ها رو خودشون دارن خب اینسون که اینا ما مربی در واقع نداریم در واقع عزیلات باید که ما مواجه با بحران مربی هستیم مربیگری اصلا مربیگری از بین دفته بشریت مواجه با فقدان مربی مربی چون گفتیم تربیت از رب به رب پذیریه مربی پذیریست پس تربیت امریست روحانی باطنی و یک مسئله است کاملا انسانی و معنی نمریست مربوط به تکنولوژی، نه امکانات، نه کلاس، نه درس نه مدرسه این کم داریم نتیجه ای که میشه گرفت از این مسئله خب ببینید ما گفتیم بب... بچه بی تربیه دینی بچه حرف گوش، به حرف نکن، نما گوشش کرده، گوش نمیده به حرف بزرگ تراب تربیت کردن یعنی اینکه تو بتونی حرفش رو به بچه منتقل کنی پدر هر بسنن حرفشون رو بچه منتقل کنن و گروه به فعل بکشنن به اطاعت بکشنن مطی بکنن مطی حرفاشون بکنن طبیعت بچه نه همین دیگه بچه میگی مثلاً پسرم دخترم این کار غلطه این کار نکن اینجوری غذا بخور اینجوری بشین مثلا بزرگتر سلام بکن مثلا مصفاق بکن اینقدر شیطونی نکن خونه به هم نگیر اینا دیگه مقدمات تربیت جانوری است دیگه تربیت قریضی است دیگه بشر امروز تربیت قریضی و جانوری شو از دست داده نه اینکه ما امروز عارف نداریم انسانهای روحانی نداریم نه بشر لازی تربیتی از نسلها و قرون قبل مماجه با بران شدید تریه یعنی بیتربیت تر از نسلا قبله بشر امروز همه چیزی نو داد میزنه همه این چیزی نوزاد میزنیم اصلا یک چیزی دلیل بیاریم دیگه. این که این نگاه کنیم جوامی بشری رو نا؟ خانواده ها رو نگاه کنیم این چگرده ببینید اصلا صحبت به اصفر بحران تربیت حیوانیه یعنی حتی حیوانیت و تربیت حیوانی این یه بشر دوچار بحران شده یعنی بشر حتی تربیت جانوریش رو که وجه مشترکش با آدم حیات رو از دستور میده یعنی ارتباطش با زندگی و ذات حیات و زنده بودنش داره قطع میشه تربیت حیات یعنی چی؟ یعنی دانستن و بلد بودن آداب زندگی کردن به قصد بخورداری از زندگی و زنده ماندن این بیس تربیت در مورد بچه هست. بچه که بزنید میاد مثل بچه میمونه دیگه یه حیوانه واقعا به تدریج این میاد بالا تا به تربیت های اخلاق انسانی و روحانی و عرفانی داریتان برسه ببین این ما فلج در این قسمت از تربیت فلجیم نه اینکه چرا تربیت روحانی نداریم نه اصلا صحبت این حرفا نیست یعنی این حرفا باقا فیلن از سرمون زیاده بخواهم همچه حرف بزنیم خب ببینید صبت بخصر این بود که اصل اصل بچه سال یعنی نه تنها بچه ها گوش به حرف پدرمادر مادر نمیدن یعنی تربیت پذیر نیستن، بلکه برای اینکه همون ظاهر زندگی دام پیدا کنه خونه تشندوی نشه جنگ نشه دیوون خونه نشه پدرمادر مجبور شدن مورید بچه هاشون بشن آه؟ بچه سال این و الان کل جالبه، نظام روانشناسی نمیدونم، مرویم تربیت جدید بر اساس موریدی پدرمادر مادر اصلاد بچه هاش. ها؟ و اینه که این دیوانوخون رو بحبه شده انواع بوش ها محصول این نوع تربیهت, تربیهت بچه سالایی که پدرمادر مادر اینه که بچه هرچی میخواد براش آماده کنه تا بچه روش پیدا کنه و استعداده شکوفا بشه مثلا و این مزخره نمی‌دون شکوه بده نمی‌کنه حتی جانوری، گری و حیوانیا هم نمیشه حتی حیوانیا درش عقیم و فلج میشه. و میشه یک بچه دیوانه، یک حیوان دیوانه، بچه های این دور زمانا اصلا یه جانورهای دیوانه، جانورهای هارن، حتی نمیشه گفت جانورهای وحشی چون یک حیوان وحش داره سلامت خودش تربیت خاص خودش داره. تو که ما درو می‌بینیم اینجوری طبیعتشه اگر اینطور نباشه زنده نیست او باز بدر رفت از اون گرد نه انسان امروز وحشی نشده حار شده ها است، دیوانه که حتی قرائز حیوانی درش مختل و محتل و رنجور شده این یکی از مصادیق این کلام خداست که که اولایکه آن و بل هم ازلون که اکثر مردم هیوان و بلکه پسترند بله در واقع میشه گفت قرون گذشته اکثر ناز هیوانات بودن لازه تربیت نفسانی برای این بود از پس حیات جانوریشون خوب برمیمدن بشر امروز مقام پایین تر و پستر از حیوانات رو پیدا کرده یعنی این بحران تربیت که با صحبت می‌کنیم یا این دوران بچه سالاری مسأله این ایا بحرانه که این نسل‌هایی که دارن بالا میان به بال میان از مصادیق مقام پستراسیونانس هستند برای همین یک بچه امروزه نه بچه جوان صوری یه جوان 15 16 سال، هی 20 ساله واقعا از پس ابزودتن قراذ حیوانیش بر بربیاد یعنی از یک بچه گربه از یه توله سگ عقب مونده تره برای ارزای قرارز حیوانی خودش حتی اینه واقعا دیگه. همین این تا دم گور باعث یه دو سرویس بدن. تمام تا ایشون بخوره فقط تا باطن قراویز حیوانیش تامین بشه. ما درام چه ارزشی خب چرا این بچه خوش برفی در مادر نمیده؟ خب نمیده یعنی خونه تازه از دست میره دیگه. که یک نظم ظاهری حفظ بشه پدر مادر مجبورن که ها موتی بچه بشه یعنی بچه میشه مربی به پدر مادر ما الان این دورانی هستیم خب بچه دیوانه میشه پدر مادرها ما میبریم همه دیوانه میشن درست با همین دلیلی که این عصر بحران تعلیم و تربیت یکی از نتایج و ویژگی‌هاش یکی از خطاو نتایج بهران زای فرار انسان‌ها از ازدواج با خاطر بچه چون از فضا بچه بر بیان و زندگی این دیگه بچه نیست یه زناشوی یه پادر حواست. از آن هست فضا صبح نیست از بچه نفرت دارن برای اینکه ماه یه دیگه برای اینکه میبینم میرن فلانی یه بچه داره ازواج می بینن. بچه روانی پدر مادرم متجندش دیوانه مش مش قرصه آرام بخم تا بتونن بچه رو تحمل کنن یه همچی و این واسه دخانواده اش و موفق به مراتب فجیتره. این بحران به مراتب در این خانواده بالا ولاد فجیتر و خطر ماتر. این بچهایی که مثلا میگن یعنی تو فلان مدارس مثلا موسسه دست میگیرم بچه ها هم کلا توش میگوشن اکثر اینا جز بچه های کم سر و تازه بالا هستن. توی به اینجا میگیم شیطان شده دیگه میگیم شیطان شده. از حیوانیت استرگش شده مجسمه شیطان شده. خب به بفردازیم به خود نص و نفس تربیت رب پذیری مربی پذیری گوش شدن به هر که اصلا خود این چه واقعی این یعنی چی این چه اتفاقی خب ببینید یک بچه بچه انسان به لازه جانور اغمانده ترین بچه هست از لازه روانشناسی حیوانات هم این قضیه مسجله. یعنی بچه آدمی که از شکن مادر در میاد از هر حیوان و چارپا و پستانداری دیگه ای الاز ارضای قراریز جانوریش اقامان دو تاره برای همینه این هم مدت با شیر بکنه تا چند سال بعد تر خوشکش کنن اگه بدش کنن می میره یه بچه گربه رو در روز مادره مرخص میشه فارغو دستیر رو میتون طول دیگیش این هم از ویژگی تمدون جدیدی ای این قضیه در هزار بار باشه شدید تره این قبل بچه ها تربیت جانوری پیشرفته‌تر بودن بچه ها امروز روز عقم منده اینکه الان بچه ها این نسل همه نابقه نمیدادم این هم یک جنونی خودفریویه با کامپیوتر میشنن مبتلا با بازی های رایانهی میشن این میشه نبوگشون این ما نبوگ دیگه نایدیم. خب البته همه پدرمادر ها اون مرض نجات پرستیشون حتی جنون بچه هاشون هم نبوغ میدونن جنونشون هم نبوغ میدونن و اسمای اچویقایی ها داشتن. آره. تمام این جنون ها و شیطنت‌ها ها اسمش نبوغ شده خب ببینید پدر مادر وقتی به بچه حرف حلق میگه این کارو نکن اینو بخور این داغ، این آتیش این جیزه خب. شباید بستر همینا همین, همین حرفا به بگوشه بچه نسل جدید نمیره همین حرفا. ها نه اینکه حرف های عالی ارفانی دو گیش نه همین حرفا. ها از آن من با من به طبیب دارم میگم چقدر بالاست آمره. آماره آمار، هایی که شبا شبا خیس میکنن، شبه دارن میدونی چقدر زیاده آماره این جوان ها، این زهی جساله خیلی بالاست و اکثرا هم, هم میکنن این دو. و خیلی فاجه هست این یکی از نشانه های بحران تربیته و بچه سالایی یعنی هیچ نمیخواد بزرگ بشه، بچه ها بچه ببونن یعنی شرایط جوریه که بزرگ نمیشه. هم بچه بزر اصل بچه سالاری به این من است به یک مداره جهانی یک همچین بدیده یک همچین فاجیه یه بوده است یعنی بچه تا آخر میخواد تو شلوارش بشاشه اینه این. یعنی همین حرف رو نرش بهش میگه نشاش این خوب نیست ها؟ یه دونم اصلا بزنی پشتش اینا اثر نمی کنه بلوطه بشه تدیلش کنه تطمیش کنه اینا اثر نمی کنه چرا؟ این لبه کلام اینه چه اتفاقی افتاده که؟ پدر مادرها حرفشون قولشون روی بچه هاشون خونسار شده اثر نمیکنه. پاسخ به این سال پاسخ به کل بحران تعلیم و تربیت در جهان است. و پاسخ به ده ها بحران دیگری که زایده بحران تعلیم و تربیت هست پاسخ به این سال که چرا بچه امروز آه، روشش نسبت به پدر مادر کره دلش پدر مادر رو پس میزنه. چرا این چیزی که تمام افتاده و روز بروز داره حادتر و شدیدتر میشه <تصفح> در مذابه به مسئله اصلا خود نفس واقعی فهم و شعور در خود بچه خب بینید بچه که کلن هر بشری دو کانون ادراک و فهم داره یکی ذهنشه شعورشه یکی هم دلشه احساسات و بشه این دو تا دو قانون ادراک بشاریست ادراک حسی عاطفی و ادراک منطقی ادلیاتی عقلی فنی ذهنی خب. دل کانون دریافت چیست محبت دل کانون دریافت دوست داشتن و پرداخت دوست داشتن محبت پذیری و محبت کردن، دل زن کانون دریافت منطق قوانین علی شناخت علت و معلول ها و درجات خرد خلدورزی، حکمت معرفت، ارفان ایلاخر زنم کانون محاسبات منطق قیاس تشبیه استنباد و کشف علت علت جوی این افتادایی حد اطراف برای کودک هست خب کودک ولی این ذهن این ما میدونیم این تجربیه ما میدونیم آدم گندشان میدونه مثلا میخوام به این یه حرفی بزنیم یه چیزی حالیش کنیم یا بهش انتقادی بکنیم یا یا می خواهم بهش عملی بکنیم به رفیقمون به داداشمون به کارگرمون به میزانی که بهش محبت می کنیم او حرف ما رو اصولا میپذیره و اصولاً اصلا درک میکنه میفهمه نه اینکه تصدیق میکنه بلکه میفهمه یعنی انسان در مقابل خفونت نفرت و بیمحبتی قوه ادراکش تعطیله این قاعده ذاتی ها این قاعده ذاتیه در فهم بشر این است هست، امر اول در تلیم و تربیت محبت بعد، علم، خرد، منطق، علیت و شعور و خرد خرد، عقل، دریافت عقلانی، سوال است بر دریافت عاطفی و قلبی، یعنی محبت یعنی بچه به میزانی که از پدر مادرش محبت دریافت میکنه گوش به پدر مادرش میده این قایده همامون میدونیم دیگه این قایده بشنریه این الف تلیم و تربیت اینو هر کسی میفهمه این قایده درست هرچنان همین قایده ای که جزوه میشه گفت الف بای ذاتی تلیم و تربیت ها علمای تلیم و تربیت ها. اصلا این است و این فراموش کردن حتا اصلا در نمیکنه این هم خودش یک علت بحران تقریم دربیاته برای اینکه واقعا ما عالمه تعلیم و ما نداریم اصلا توی دو زمانه ما مربی مفهوم حقیقی ما آموزگار معنوی ما نداریم یعنی به مفهوم ما معلم نداریم تعلیم دهنده ما نداریم امروزه در واقع نسل معلم و مربی به مفهوم حقیقی کلمه روی زمین داره ور میفته انگاه این چیدی که داره اتباه میفته حتی تعلیم و ترب هی... آ، این در وعده افتاده به چون در اینه، بخاران حاصله و افتادنی ترین در بیش ایوانیه، بوران. برای همینه که این بورانها، ادامش منجل میشه به بر نسل بشر روی زمین. حیات یه حیات بشری داره تهدید میشه، مواجه با بوران شده. خب، اگر بچه امروز گوش به پدر مادر نمیده، پذیرش نداره، اصلا مخش تأثیر در مقابله زبان پدر مادر. علایش اینه افتاد مادر محبت و ای دریافت نمی کنه سلام نا؟ ما فیل نکنم اثبات این قدیه فلسفه و داشته این که دازه شارطای تربیت. تجربه هم همون همینه اینجاز بدهیات و محکمات تعلیم و تربیت به بیان دیگر از اینجا میشه گفت مرز بین تعلیم و تربیت می شهد از ادراک ذهنی تربیت مربوط به ادراک قلبیست حالا میشه گفت تو سال یعنی چی درستش نیگه بگیم تربیت و تعلیم چرا؟ برای اینکه دریافتا و ادراک ذهنی معلوله دریافت قلبیست تا محبت نباشه زن نمیفهمه ازن نمیخواد بفهمه این ذاتیه پس تربیت مقدم است بر تعلیم ها؟ ماستون میدونن در دانشگاهیم. اینو گذاस्टन چی بسن تربیت داره و میفته اون چیزیش علوم تربیتیه میشه روانشناسی آماریه روانشناسی همتون نیست اینمش آمارن اینمش تکنولوژی اثباتات تحت عنوان علوم تربیتی اصلا میگه دو دانشگاه مول تربیتی هستن عملاً هیچ چیزی وجود نداره مولانا درست ولی میگفته حتی دانشجو خود ما در قبل که خیلی وقت پیش افتاده <تصفح> روانشناسی هم در علوم تربیتی هم روانشناسی ژنتیکه که رفتی به تربیت نداره اتباغان ضد تربیاته خود ژنتیک روانشناسی فیزیولوژی عصب شناسی و این چیزاست که رفتی به تربیت نداره این چیزها. هیچ در تربیت نداره اینا این, این چیزا رو به جای علوم تربیتی گرفتن خودش یک از علل برافتادن تربیته نه این روانشناسی ها نه رفتی به تربیت دارن نه کمک به تربیت میکنن اتباغان خودشون ضد تربیاتن ها فیلم مثلا روانشناسی ژنتیک نو بر خلاف حقیقت چنین ادعایی داره که تمام خلق و خوی بشری ژنتیکی هست میرسی اینکه خوش اخلاق و یکی بعد اخلاق اصلا یکی با تربیت اینه که بی طبیعت اینم جنذیکیه این اینکه آدم اخلاقیه اون اگه آدم شربیه اینم جنذیکیه پس این چی پس این تربیت دیگه مسئولیت بشری تأثیر دینی تأثیر اخلاق یعنی ای تجری بشری ای تأثیر انسانیت دینی بعد ده میشه آنج که, که امروز از عنوان علوم تربیتی داره تدریس میشه خودشون ذاتا ضیت تربیتتا خود این علوم مجموعه علوم تربیتی خودش یکی از علل پیدایش این برران ت تبیت در جانه تو دست سری جان آملشان داده میشه از ترسان آاضگه بعدزار میم بل آقا می که اچ و بستر بالا خودش بذااریم ما فقط آ رو پر کنیمیم خودش هری بخد بشه میشه آقا ج تیکیدم شده پس یکی از علل بحران ترمی تربیت بس چیه؟ خود این که علومه که اسمید علومه تربیتی هسته در زیرون باشه و نیست اسمینا یاد داشت کنیم سرف و سرف ازم فکر خودش فرق فرق کنه در حل مسائل داخل خونه خودش خیلی خوب ما بیشتر سعی داریم که مسائل رو در, در خونه برازی کنیم این جمعه تربیتی اشاره میگیم که چون این هم برحال ما برم بر بودن. بنابراین، پدر مادر وقتی محبت نراش باشه به بچهش، نمیتونه به بچهش تعلیم بده، نمیتونه تربیت کنه بچه هم، قلبش و مغزش تعطیل در قبال پدر مادر گوش به هر کسی میدهد لا پدر مادر اصلا تضاد نسل‌ها ها در عصر ما، تضاد نسل فاصله نسله در گذاشته داشتیم فاصله منطق و احساسات پدران و پسران مادران و دختران بوده است. الان فاصله نسل نداریم ما ادعاوت نسل ها داریم قد و غم نسل ها داریم نبرد تمدن ها میگن ما میدونیم چه حرف مفتیه نبرد تمدن ها تمدنی بجونه داشته باشه نبرد وحشی هاست در واقع آنچه که بر روی زمینه نبرد آدم خور هاست. نبرد امپریلیست هاست. کدوم تمدن همه تکنولوژی است تمدن ما تمدن صنعتی پولیه اینه ما رنگ و بشه تمدن اسلامی مسیحی بودایی همین تمدن‌های نداره اصلا وجود نداره اینو هستن همه تکنولوژی براز بولبر هستن حالا برای نبودن عریزی یکی هم در نماز میخونن یکی کلیسا میره اینکه تمدن نشد که بنابراین در حقیقت به جای نبر تمدن ها با از گفت نبرد نخفا داره اتفاق میفته جنگ خونی نمیده پدران و پسران، والدین و فرزندان این آمارها رو داده نمیشه در کشور خودمون کم نیست در اروفاق، در غرب، در ژاپن خدا بار بار شدید تره. قتل بچه ها به دست پدر مادر و قتل پدرمادر به دست بچه ها. این آمارها رو اگه اعلام کنند آدم از وحشت ممکن استن از زندگی اینم بخشی از بحران تسلیم نه ندانون میرا باشن قاطیه بلکه خصم جانیان دیگه بخونن گیتشون ما دلواخت بچه‌هاشون میگوشن این از اخبار مراقب گفته میشه دیگه و بچه‌هایی که به مادر خودشون میگوشن ترور میکنن انتقام میگیرن پدر مادرشون کینه ای که نتیجه‌ای از فایده خودش داره در تاریخ سابقه نداشته کینه کینه دادن مرگ کینه‌ پدر مادر چرا این خودش یه حقیه بچه محبت نیافته هیچ نیافته محبت سنگ زیربنای تعلیم و تردیته محبت سنگ زیربنای انسان بودن انسانه محبت سنگ زیربنای هویت و احساس وجود در انسانه و پدر مادرها ندارن محبت رو چرا؟ برای اینکه زنسوارها هم دوست بچه؟ از رابطه بین پدر مادر تفلیق میشه نگاه کنید بچه مخلوق رابطه پایین تنهی پدر مادر. درسته؟ پدر مادر با هم میخوابه بچه با وجود تنش محصول همتنی و هما گوشی پدر مادر روح و روان و شخصیتش هم بعد از که به دنیا اومد روز به روز، ساعت به ساعت، هفته و ماه و سال و روز مخلوق تدریجی رابطه بین نفت در مادره رابطه معنوی آتیفی بین نفت در مادر این چه دو فلسفه و نداره نگاه کنیم همینه یعنی بچه وقتی بدونی اومد خیلی قیش نشد نه، اینکه ایش اومده روحش، روانش، شخصیتش، عواطفش، اندیشهش خلق و خوشش همه در لحظه به و ساعت و روز و هفت و سال از رابطه پدر مادر از رابطه آتیفی فکری و انسانی پدر مادر داره تغذیر میکنه و رشد پیدا میکنه تا بچه به سن بود و از خانه بره اون وقتی خودش میدونه با خودش بس بچه لحظه به مخلوق و مولود رابطه پدر مادره خب بچه اگر تربیت نمیابه علتش اینه که محبتی نمییوبه از پدر مادرش چرا؟ برای اینکه در رابطه بین پدر مادرش محبتی نیست که واسه من تظیه کنه. چون محبت چیزی نیست که مثلا در دل من باشه بچه‌م تظیه کنه. محبت بس جاری بشه تا بچه‌ازش تظیه کنه، تظیه کنه. مثل آبی در جوی محبت بسی جاری بشه، به فعل در میاد تا بچه از اون آبشخور بنوشه. محبتی بین زن و شوهرها نیست. ازدواج این دو زمانه همه اقتصادی سیاسی تجاری است دیپلوماتیک همش <تصفيق> بنابراین وقتی محبت نیزه چی محبت ذهن زنده و خلاق ذهنی که تفکر خرق میکنه ایده های نو خلق میکنه معرفت خلق میکنه دانش نو خلق میکنه دل زنده محبت تولید میکنه دلی محبت تولید نمیکنه یعنی دلی که مرده با و قرآن یا سنگ شده پس این باران تلیم تربیت حاصل است که مرده و سنگ شده قلوب پدر و مادر سواییم، حتی بچه در رابطه بین پدر مادرش مگه تربیت میبینه، آدابی میبینه، حق و حقوقی میبینه، اقلومنتقه میبینه نه خیر، میرونه داتا وحشی هستم، یا دارم چابزوسی هم دیگر میکنم، به هم دروغ میگن، یا درن به هم فش بزن یا دروغه یا جنونه م? بچه ما همون میکنه دیگه یعنی، خود پدر مادر تربیتی ندارن در مرده است. انسانی که درش مرده است تربیت نداره محبن نداره و دلش محبن نداره اون سری هم بر اون دل سواره شعور و خیرت توش نیست اعضوش نیست ذهن انسان آبش دله برای همینه یک انسانی دل مرده هم افزورده است به همه چیز منفی و پاسیف نگاه میکنه نیهیلیس میشه نیست انگار میشه بله دیگه دل محبت دل محبت دل محبت زنی که از یک دل مرده و معیوس و فاقد محبت تقضیم میکنم اندیشه مرده و سیاه و چرکین تولید میکنه خودکشی احتیاط نفرت کینه انتقام انتقام از زندگی انتقام از خیش آه؟ خودکشی در جوان ها، در نوجوان ها آه؟ انتقام از وجود خیشه این نوجوان می وجودی داره که در این وجود هیچ بویی از وجود نیست. هیچ بوی از روح نیست، برای اینکه هیچ بویی از محبت نیست، هیچ بویی از خرد درش نیست. یک گرایش به گلهوموت مخدر. حاصل محبت و تربیت در نسل جدید. خودکشی غیر مستلزم و تدریجی برای رهایی از خود برای روحی از خود برای فراموش کردن خود فراموش کردن یک چون وجودی که ها، نبودش بهتر از بودشه برای اینکه روح نداره چون دل نداره وجودی که دل درش مرده یعنی حیاط روحانی حیاط انسانی درش مرده اینه من جنبه انسانیش از جنبه تربیت حیوانی که از حیواناتم پستر ما از جنبه انسانیم هم که این هم برای همینه دور دور حیوان پرستی تو خونه سگ پرستی، گربه پرستی ها چون گربه عاطفه حیوانی داره با حضور یک گربه یا سگ یا خانواده احساس میکنه که یک بوی از زندگی داره تو خونه میاد سگ پرستی و ساز جون حیوان پرستی یعنی متوسل شده بشر به این باز بشر از حیوانات پستر شده که برای ادامه حیات حیوانی خودش متوسط شده به حیوانات بل پستر از حیوانات پایگتر از حیواناته، الیلتر و ضدیلتر از حیواناته یعنی حتی آتفه حیوانی هم نداره نگاه کنید حیوانات به طول های خودشون چه محبتی میکنن. محبتی هم جانوری هم در بشاری این بود اکتر داره میمیره خب، اینا یعنی چی؟ دل به چی نمیشه؟ دل به محبت برسن نمیشه ولی آنپکی نداریم که ما زندش کنیم که تو دل ولی خود این محبت و عشق اجره. بله من میتونم ذهنم رو با این مقدار مطالعه تحصیل علم ها با یک سری فرمولا و اطلاعات پر کنم ولی دلمو نمیدونم محبت تزکیه کنم. ها؟ من نیست. دل انسان دست خودش نیست. دست خداست. پس محبت اجره خداشناسی، خداپرستی، تقوا و توحیده. دینداری فضیلت اخلاق پس این قلوب مرد قلقه های فاقد محبت حاصل کفر باشه. حاصل بیدینی و جنگ انسان با مصبب یا دین نداره بشاره امروز یا جز نفاق و جنون و خرافات هیچ چی نیست که الان وقتی خرافات نگاه میکنه باید قربون کافرهایی که اصلا از بی خرابند خرافات خرافات خب پس میشو گفت ذات سلیمون تربیت پس از اخلاق دینی معرفت دین و تقوه هست در جای دین نیست محبت نیست در جای محبت نیست عقلم نیست اینا ببین سه شاخه دین عقل و محبت این سه نور واحد هستن با قول پیانبر سه از هم دیگر یک جای یا هستن یا نیستن و به یک دریجه در کسی هست یا نیست یعنی میزان نه عقل و ایمان و محبت در یک انسانی همیشه در یک سهده این قایده ای که قدوم با ما مخوده دقت کنی همین دوره من هست یعنی نمیتون بگیم فلانی انسانی بسیار با محبتیه ها ولی آدم مثلا کافره نه اونی که محبتیه با چابلوسی دیا کنی یا بگیم فلانی انسانی بسیار آقل و خردمندیه ولی هفت که آدمی مثلا بیاتفه نه اون ققل این اون شعار این اون شورموله نیست ببین این مسلس در یک سطح با هم دیگه یا هست یا نیست به یک درجه است. در درجات علم درجات عشق درجات طبع و دنداری